دیکی از چیزایی که اختیارش به دست ما نیست مرگه میتونیم مرگ اختیاری داشته باشیم ولی در بعض از موارد حرام هست خودکشی حرامه بگذاریم از بعض از افراد که انقدر خودشون کار میکنن که میتونن در عین زنده بودن حالت مرگ اختیاری رو داشته باشن اونها استستان اما عموما ما در مورد مرگ اختیاری نداریم او به سراغ ما میاد مثلا در مورد پیانبر اکرم عیمی اطهار علیهم السلام اولیاء كملینه از غیر معصومین حتی مرک الموت میاد اجازه میگیره اونها اجازه میدن و قبض روح میکنه خب اینا به نوعی میتونه غیر اختیاری بودن رو کنار بگذاره این برای بعض از افراده خیلی کمه عموما ماها قافلگیرمون میکنه ملک و موت و اون جاهایی که امیدمون بعضی اینطوری هستیم دیگه بعضی از انسان ها در اون مراحل بالایی که دیگه امید بخشن حالا دیگه داریم به نتیجه میرسیم همون موقع میاد و جان رو میگیره معمولا کسایی که آرزوهایی بلند دارن فراموش میکنن که مرگی هست اونا قافل گیر میشن اونایی هم که آرزوهایی بلند ندارن در این حال که طلب میکنن آقابت به خیلی رو مرگه همراه با صحت و سلامت رو اما اونام قاپلگیر میشن خیلی اوقات رفتنشون رو خبر ندارن بعض از افراد هستن اینکه با خبرن